بسم الله خب یا الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شریکن في الملك بلم یک کلکو ولیون من از ظل و کبره و تکبیرا فصلاتو و سلام علا خیر خلقی و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله الالمین مصطفی محمد صلی آل الله عليه و سلام. ناموس الدهر و امام الاسر حجت ابن الحسن العسكري المهدی ارواح اونا لطراب و نکانه الله على عدائه مجمعین منالون له قیام یوم الدین خوب ارایز ما در این شب های نورانی ماه مبارک رمضان در این هیئت محترم به حول قوه خداوند شرح خیلی کتاهیه بر مواعظ و فرمایشات امیر علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام نامه سی نهج البلاغه که شب‌های قبل گفتم که این نام سراسرش مملو از مطالب حکمت‌آمیز که امیرالمؤمنین از خودشون یادگار گذاشتند برای امام حسن مجتبی امروز میرسیم امشب به یکی از درخشان‌ترین واقعاً فرازهای این نامه که شاید این جمله رو مکرر شنیده باشین از شاید خیلیام حفظ داشته باشند. امیرالمؤمنین به فرزندشون میفرمایند لا تكن عبد غيرك قد جهلك الله را خیلی جمله زیبایی میفرماید که خلاصه بنده غیر خودت نشو خدا تو رو آزاد هر خلق کرده خودت رو زلیل نکن برده نکن زیر دست نکن خار نکن لا تکن عبد غیرک وقد جعل کلا هر را خیلی آزرند یه زندگی مشقتباری رو تحمل کنند اما در مقابل دیگران خودشون رو زلیل نکنند خار نکنند این آزادگیه من یه بیتی رو از رجزهای مسلمت عقیل یادداشت کردم که تو کوفه میجنگید و این رجزا رو می‌خونم این رجزا از حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام به ما رسیده این چقدر اذیت شد جناب مسلم تو کوفه چقدر کتکش زدن چقدر از همه بدنش خون میرفت. واقعا یه شهر می زد دیگه واقعا پهلوانن اینا. واقعا پهلوانن. یه،, یه نفر یه شهر هیچ عقب نشینی نمی کرد. من یه بیتش رو نوشتم اقسم اینا رو می خوند. اقسم لا اقتل الا را چم <تصفيق> من قسم میخورم امروز جز آزاد نمیرم ذلیل نمیشم خار نمیشم میمیرم اما کرنش نمیکنم در مقابل غیر خودم خودم و زلیل ذلیل نمیکنم و این کانل موت اندی مر را یه معنادار است که هر این مرگی که برای من تدارک دیدن تلخ باشد یعنی تیک تیکم کردن توجه اونو تحمل میکنن اما خودمو خار نمیکنم دلیل نمیدم قسم میخورم اقسم لا اوق تلو الا هورا. قسم میخورم کشته نشم مگر آزاد بعد میفرمایند هر چقدر این مرگ رو برای من تلخش بکنم همه بزنن این آدم آدمای پست هم اینجوری دیگه ببینن مثلا یکی دیگه دستش بجام حضرت عباس هم اینطوری شد تا دست داشتیش که جنو نمیومد دست داش که قدرد همه میامدن جنو می گفتن بعضی هم بیعدم هم هستن توی عباس می گفتن موقع که دست داشتم چرا نمیامدیم آر آر گه این همه میگن عباس عباس توی آدم های پست اینجوری هست منتظر هم دیدیم تو جامعه هم هست مثلا یکی رو میگیرن دزدی کرده چی کرده مثلا میگم می من بارها دیدم از اون بره خیابون داره میاد میادیم این یه اردنگی بهش میزن یه رفتنش دیگه سه نفر گرفتار از اون ور داره میاد یه لغت محکم میزنه تو شکمشو میره یکی از موتور پیاده میشه میاد یه چیزی میزنه تو کل اینو میینه آوا و بنده خدا رو گرفتن دیگه خود از موتور پیاده میشه یه دونه میزنه به خدا ماشینش وقت پیاده میشه میاد یه دونه مش میزنه تو سرتشو میره آقا این چیه حالا من با مسلم چه کردم وقت مثلا اونجا که دستاشو بستند و نه... اصلا نمیتونستم بگیرنش از پشت پشتونا آتیش میریختن نمیتونستم بگیرن من از نگه چه هفونا میکن این چیز هایی میگه هی برای این رئیس شهربانی کوفه محمد ابن عشقس بود همه رئیس کلانتریم امروز میگن هی میامدم میگفتن نیروی کمکی بده 20 نفر رو دارد. دوباره اومدن گفتن یه ذره پنجات دیگه دارد. دفعه سوم گوه آقا من گفتم تو خونه توعه برین یکی رو بگیریم بیاریم. تا اله ست تا نیرو من فرستادم. اینا گفتن که شما از دارول ماره بیار بیارون ازتون میکنید به محمد هر. تو خیال کردیم ما رفتیم یکی از بقالای کوفر بگیریم بیاریم. گفت این برادر زاده علیه بیا ببین چیکار میکنه این چی چون برادر زاده مرتضی علی بود دیگه امیر یعنی اموش بود خدا نفسنبوز اینا سخت قبول میکرد آدم ها رو آقا با یه دست میگرفت پرت میکرد پشتمون از رو اسب اینجوری میگرفت از پشت پرت میکرد پشتمون یه شهر میدادن نمیتونید سم بگیرنه بعضیا میگن مکر باش کردن بعضیا میگن امان نامه دادن گفتم انقدر آدما رو نکش خیلی کشته شدن تو رو نمی‌کشن یعنی نهیش میکردن که باعث قتل آدمای بی‌گناه نشود بعضی‌ها میگن نامه بهش دادن تسلیم شد بعضی ها میگن جلو پاش خندق کندند بوندن افتاد توی چاله ای از رو آس افتاد دستشو پاش خب حالا که درس هر کی می اومد میزد من سند دارم برای اینا آب میخواست بخوره نمیتونست انقدر از بدن این خون خومه همین تا می اومد آبو بخوره آب پر میشد خون از همه می ده. چند بار آبو آوردن همین تا اومد بخوره همه آب خونی شد بعد اینو با این وضعیت آوردن تو دارالمان آزادگی دارم براتون میگم ها هم براتون خوندم نجوم اورڈنش ابن زیاد اون بالون روز وارد شد سلام نکرد یکی از این دور قابچینا از این متملقا گفت چرا به امیر سلام نکردی می‌خواست ابن زیاد خوشش بیاد گفت چرا به امیر گفت این زن رو شما میگین امیر گفت خاک تو سر شما که این زن آزاده امیری حسین <تصفيق> من پسر فاطمه امیرمه مگه من از آشغال کله‌ای رو امیر میدونم شما به این زن آزاده می‌گین امیر واقعا خوش توست مردمی که یه زن آزاده برشون امارت کنه ابن خوب خب بهش برخورد دیگه ببین آقا وقتی میگه این زن آزاده همونی که رهبرش و امامش روز عاشورا میگفت ان دریشا خوندن ان تائی یابنا تائی اونام میگو این زن آزاده اینو دیشب خوندم اینم آزادی اونام میخواست خب یه چیز توند بگید دل اینو بسوزونه دیگه گفت سلامم میکردی می‌کشتمت سلامم نکردی میکشمت میگه دل اون آتش بده میگه یعنی امروز سلامم میکردی من می‌کشتمت رم نمیکردم نکردی هم یه نگاهی بهش کرد گفت همه انسان‌های پاک و زنازاده ها کشتند گفت برو نگاه کن همه انبیار و زنازاده ها کشتند اولاد انبیار و زنازاده ها کشتند منم یه زنازادهی مثل تو می من میدونم تو به من رحم نمی‌کنی. چون پاکان رو زنازاده ها می کشن این زبانش آخواد اینا آزادگیه از شمشیر برنده تره گفت ببرینش بالا داراله ماره منو از شر زبان این نجات بدین چه زبان تیزی داره این وقتی می آقا خرامان می این <تصفيق> وقتی که از این پله ها می بالا با افتخار می این ابن زیاد به بغلستیش گفت الموت والفخر گفت می ولی افتخار میکنه سرباز حسین ابن علی <تصفيق> این آزادگیه گفت قسم میخورم امرو نمیتونین منو بکشین مگه آزاد هر چقدر این مرگ رو برای من تلخ کنید من آزاد میمیرم خار نمیشم زلیل نمیشم در مقابل قیل خودم وقتی هم امام حسین اومد کنار بدن هر ابن یزید ریاهی چی بهش گفت انتل هر امام خیلی آزادگی رو دوست داره یه دستمالی هم بست به پیشونیش خونا بند اومد هر دل شکسته بود دیگه با بقیه این کار نکرد هر چون بد کرده بود دل شکسته بود میخواست ترمیم کنه یه دستمالی بس بعد فهمیدن انتل کم کما سمت کم اموکه هر را من همیشه روزای دهه اول محرم میگم این دیگه روزخونی منه میگم چون قبلا یه چیزی به مادرش گفته بود حالا میخواد رفو کنه قبلا گفته بود مادرت به ازاد بنشینه سکلب که مک. حالا میخواد هموندن که چه مادر خوبی داشتی هر چه اسم خوبی برا تو گذاشته تو هوری همونطور که مادرت تو رو. بعد فرمودن انتل هر سه دنیا و الاخره تو سرلشکر از مالش گذشت از درجهش گذشت از اعتبارش گذشت سرلشکر بود دیگه سرلشکر چه درجه ایه همه رو یه پسر علی بود به پسرش گفتش که برو میترسم بعد از من بپیچونی اسم جزب شهده های کرولا نباشه برو من چشم ببینه که در راه حسین ابن علی که نشد شد. پسرش اول تا رجب برو من خاطرم جمع بزید برم تو یه دفعه زندگی دنیا رو به زندگی آخرت ترجیح بدی آزاد نمیری برو که این علی آقاد افتاد این هر اومد سرشو به دامن گرفت امام حسین اومد دستشو گذاشت به شونه هر همونم داغ جوان خیلی سخته باش هم دردی کرد <تص> بعد خودش اومد میگه تو هر همونطور که مادر تو رو نامیده یه دونه دیگه بگم این خیلی شنیدنیه این آخری که میخوام بگم خیلی شدیدنیه همه شنیدین وقتی امام موسیم تو گودال افتاد به خیمهاش حمله کردن میگن علامه این ایام ما اون تعلق خاصی به امیر المومنین داره دیگه امیر منتظر شب 19 چند روز دیگه یه روز رو منبر منبر رو ول کرد اصلا یه دستی به این محاسنش کشید که این آخرا همه سفید شده بود این از امیر المومنین یه نگاهی به امام حسن مجتبی کرد گفت حسن جان چند رو از این ماه گذشته؟ گفت 13 میدونست تا عشق بازی میکرد میدونست چند شب گذشته میخواست تفاها کنه بعد گفت حسین جان چند شب از این ماه مونده گفت 17 شب همین تا گفت 17 یا اشکای درشت از چشم امیرالمومنین ریف روی مواسم شریفش سه بار فرمودن انال و انا الیه <تصفيق> بعد فرمودن دروغ نمیگم به منم دروغ نگفتن وعده من با خدا تو این ماهه ملاقات من با خدا نزدیک شد علامه یه جمله میخوام بگم اب نداره اینجوری صحبت میکنم این علامه امینی میگفت اونی که از امام حسینم مظلوم تره علی ابن عبیتو گفتن چرا گفت حسین نزاش به ناموسش حمله کنه <تصفيق> همینو دارم بخوام بخونم وقتی تو گودال افتاد حمله کردم به خیمه ها دیگه امام رمقی هم که نداشت تو گودال افتاده بود یه نیزه شکسته رو ستون کرد نیمخیز بلند شد نمیتونست باشه من جملات نمیشم یا شیعه آل ابی سوفیان، این خیلی شنیدنیه یا شیعه آل اب شیعه یعنی پیرو ای پیروان آل ابی سفیان ان لم لکم دین اگه دینم نداریم از این میخوام یه درسی بگیرم ها. اگه دینم ندارین و کنتم لا تخافون المعاد خدا رو هم قبول ندارین معاد هم قبول ندارین از روز قیامت هم نمی ترسین چون قبول ندارین تکون و فی دنیا کن اما آزاد زندگی کنین جوان مرد باشین دین ندارین معاد رو قبول ندارین جوان مردی کجا رفت خب که من زنده دارم دارم بینم میخوایین چطور چشم من به ناموس هم, هم <ت Robotereg> خب, خب این جوان مردی دین نداری این میده یعنی چی آقا یعنی میشه کسی دین نداشته باشه آزاده باشد میشه یعنی هستن کسانی که تو این دنیا آقا دین ندارن روزه نمیگیرن نماز نمیخونن خدا را قبول ندارن معاد اما جوان مردی دارن اما میشه آدم روزه هم بگیره نماز هم بخونه نماز شبم بخونه اما جوان مردی دارد. که اینا اینجوری بودن اینا هم نماز میخوندن اینا که تارک و سلاحات نمودن که اینا نماز میخوندن روزه می‌گرفتن. میگه آقا اگه دینم ندارین یعنی میشود آدم دین نداشته باشد و آزاده باشد اگر از معادم نمیترسین آزاده باشین او م... میگه من دارم می‌بینم، گفت بیاین کار من رو یک سره کنین بعد به خیمه های من هم میخونم کار من تموم کنیم اینا آقا با همه پستیشون با همه جنایتشون شور کردن گفتن حق با حسینه اینا خود جو... گفتن ما باید بریم کار اینا تموم کنیم که نمیتونه ببینه که ما به ناموسش حمله میکنیم من همیشه میگم یه دفعه این جمعیتی که هجوم آورده بود به سیام هجوم آورد به گودال <تص> ما همش اینجا میگم امانت دل زینب اینجاست که زینب دید شمشیردار باشم نیزدار اما بلاخره میگو آقا کار من تموم کنیم اما دلها بسوزد برای مولای ما امیرالله ماه علیه <تصفح> شب ایده هم خود امیرالمومنین خیلی آقا را کردم آد آدم آزاده آقا تو این عالم ازید میشه خدا آدم آزاده من تو یک جای معتبری میخوندم سیزده تیره قرش پشت ماویه بودند سیزده تیره قرش پشت ما تیره قرش نصف و نیمه پشت علی بودند آدم های آزاده عزی... چون میگفتن ماویه من همی که دی شب براتم ما گفتن لارج هم خودش میخوره هم به ما میخورونه علی نه خودش میخوره نه میذاره دور بریاش میخوره دور این جمع نمیشن که به خدا دور آدمای آدمه که جمع دور اینجوری آدم‌ها جمع میگن آقا خودش دی شب گفتم خودش بن سوار میشه یه پراید به ما داده میگیم مشتیه تنها خورنی خودش میخوره به دیزی لاستاشم یه چیزی اما علی آقا نه خودش میخورد نه میذاش کسی از قبل او بخورد یکی از دخترای همین رو رفته بود یک گردنبند و از بیت المال امانت گرفته بود من بود مادرم نداشت یک گردنبند از ابن ابی رافه مسئول خزانه امانت گرفته حضرت دید گفت این چیه اینو کی برات خریده گفت اینو از ابن عبی رافه امانت گرفتن گفت در بیار در بیار ابن عبی رافه رو صدا زد همین از در که اومد تو گفت اتخون همون سلام ملک نکرد رو از عجب. علی آقا اینجا سلام هم نمی کن اتخون المسلمین گفت تو رو من اونجا روشدم به مسلمونا قیانت کنی گو, گو این چیه گفت زمان گرفتن گفت دختر شما اینو آورده اونو برده اینو آورده جاش گذاشته، اونو برده میخواد متنوز گردنش بندازه اونو میاره اینو میبره امانت گرفت گفت هر کی زمان بیاره بهش میدی گفت ندیگه آقا مگه ما به هر کی بدیم که دخترشون گفت این ادالت نیست گفت این ادالت نیست بعد بهش فرمودن که ابن عبی رافه حواستو جمع کن این عجیب آقایو خیلی تنده این جمع. گو حواس جمع کن من به نزدیکانم فقدگیردارم ببین بووش ببین گفت اگه دیگران خلاف بکنن من با تازیانه اینا رو ادب میکنم اما اگه حسنین خلاف بکنن با شمشیر جمع میکنم دور این کسی جمع نمیشه که به خدا دور این کسی نمیاد که میگن آقا این نه خودش می خودش نونجو میخوره وای به ما که دور ورشی اما معاویه او دارم که مشتیه خیلی علی اذیت شد آخر دیگه بهش میگفتن شنیدیم سلام بدنه نمیکنن. آقا من سلام میکنم روشون رو بر میگردنن خب شبه خود آقا میفرماید خود, می خود امیر المومنین دارم آزادگی براتون میگم خود امیرالمومنین میفرماید شبه هیفده هم پیغمبر اکرامو خواب دیدم گفت پناه آوردم به رسول برای امامتان گفته ایم گفتن جان دیشب جدتون رو خواب دیدم شب 17 هم همین ما گفت پناه آوردم به پیغمبر این صورت هم روشتم گفت سینه پیغمبر خوب گفتم یا رسول الله هم این مردم دیگه از من سیر شدن <تصفح> بله؟, بله مردم هم از علی سیر میشن میگن آقا این بره یکی لارج بیاد ببا این همه راه ها رو بسته <تصفح> همه راه ها رو بسته گفت <تصفح> <تصفح> هم مردم از من سیر شدن هم من دیگه از این مردم سیر شدم پیغمبر چیه رحمتون للعالمینه دیگه, من دیگه خدا در مورد او گفته ما ارسل ناکه الا رحمتن للعالمین پیغمبر گفت علی جان دیگه نفرینشون کن دیگه صبر من دیگه. پیغمبر گفت نفرین کن گفت حسن جان از خواب بیدار شدم درکت نماز خوندم دستامو آوردم بالا گفتم خدا یا منو دیگه از این کوفه بگیر بخواد نفرین کنه علی ابته چه نفرینی از این بالاتر مردمی که علی از دست بدن بالاتره یا بچش رو از دست بده آدمی که آقا علی رو از دست بده بالاتره یا آبار سرش خراب بشه گفت خدا یا منو از کوفه بگیر یکی مثل خودشون بیاد بر اینو مسلط بشه اهل زد و بند بشه اهل معامله باشه اهل لیفت و لیست بشه به قول الیزیا همین هم شد علی رفت کی آمد <تصفيق> حجاج بن یوسف عبید الله ابن زیاد مغیره ابن شوعه چون این کیا آمدن بر این کوفه و حکومت کردن خدا علی رو از این مردم گرفت به خاطر این میشود عیون کسی دین نداشته باشه آزاده باشه خیلی آقا دینم ندارن آزادن خیلی دینم دارن بوی از آزادگی نوردن من یه حدیثی آخر عراعزم نوشتم امام صادق فرمودن خمس و خسال خمس و خسال پنج تا خسلت ای کسی نداشته باشه بهره چندانی از این دنیا نبرده چیزی بارش نیست بخلاصه. ما خب دیدمون مادیه دیگه مثلا ما میگیم فلانی رو توپ نمیتره کنه مال زیاد مال زیاده که قارونم داشت مال زیاده که یزیدم داشت اینا که مال زیاده که ماویه هم داشت مال زیاده که فرعونم داشت کسی پنج تا خسلت نداشته باشه آقا روش حساب نکنین چیزی نداره یکی وفا یکی وفا اینا خیلی کمال من بارات رو سفرنی میگه این مردم کوفر رو اگه میگن آدم بدی بودن اینا نماز میخوندن اینا وفا نداشتن بی وفایی اینا رو به این روز انداخته به نماز نی به روزنی به حج نیز وفا این آدم به عهد و پیمانش وفادار باشد در مدرست عباس میگیم اشهد و لکه تو زیارتنامش مال امام صادق هم از این زیارتنامه اشهد و لکه به تسلیم و وفا و نصیحه اشهد و انمکه به تسلیم و تصدیق و وفا و نصیحه ما شهادت میدیم تو تسلیم بودی با وفا بودیم با وفا یه جمعه برای از بگم وقتی رمق داشن امام حسین اومد بلا سر از طب. امام میخواست عباس رو برگردونه چون همه بدنها رو امام برگردون حتی علی اکبر هم برگردون میخواست عباس هم برگردونه بیشه دشمن نم. هم. همین دست انداخت قسمش دارست به عباس گفت منو رو بر نگردون وفا رو میخوام بگم آه. حالا روز خونا مدها ها میگن منو بر نگردون اونا میخوان عشق بگیرن میگن بر نگردم، من به بچه ها قول دادم مثلا سکینه میاد دم در من خجالت میکشم. اما من عبارت مختار میخوام فهموندن که حسین جان منو بر نگردم. گفت چرا؟ گفت دشمن شاد میشی <تصحیح> گفت به ریشت میخندن <تصحیح> اینو حضرت فرمودن که پدر و مادرم فدا اون مرده و زندت به من وفاداره. <تصفيق> مرده و زندت یعنی داری میمیری نگران من خط میگو بسن جان گریه میکرد امام همان چرا گریه گفت من برد گریه کنم تو چرا گریه می گفت الان تو اومدی بالا سرم یه ساعت دیگه تو میستی <تصفيق> وقا ببین وقا رو ببین این ارزش داره بفو این مسلم ابن اوسجه 86 سالش بود حبیب ابن مظاهر 82 سالش بود مسلم وقتی افتاد حبیب اومد سرش رو به دامن گرفت دو تا رفیق 50 ساله بودن بیش از پنجا سال با هم رفیق بودن سه چهار سال هم با هم اختلاف دارن. دو تا پیر مرد هست. سرشو به دام خب گوش امام حسین اومد بالا سر. امام می اومد بالا. دید, دید حبیب سرشو به دامن گرفته. خودشون بالا وایستاد. دید سرش تو دامن حبیبه دیگه. امام هم وایستاد. میشنید. حبیب گفتش که به مسلمی. چیزی نیاز نداری. ما باشیم میگیم که اگه یه دستمالی داریم این خونه سرمو ببند این دستمو ببند ما دیده بودیم تو جبه دیده بودم آقای ایناله میگفتند اصلا میگفت این, می این خونه ببند اینه چیکار کن این چیزا میگفتند گفت چیزی نیاز نداری همین تا گفت وسیعتی چیزی نداری مصدم چه شد اگه دید امام بالا سره گفت حبیب این آقا رو تنها نذاری <تصفيق> گفت اگه سعادت دنیا و آخرت رو میخوای این آقا رو تنها ندار. بقیهش مهم نیست. صدای سرت. <تصفح> این وفاد. چقدر اینا بگم؟ آدم میذاره جلو خودش آقا میگه تیر به شما بخوره به من نخوره من نماز بخونم. اینا, اینا یه جا خالی نمیدند. دو نفر رو گذاشت میگه تیراب به چش شما بخوره به سینه شما بخوره به صورت شما به دهن شما من به من نخوره. از این دست خود آدم نیه آقایمون. آدم من خودم اینجا دم. تا ببینم تیر داره میخوره این اصلا دست خود اینا بی اختیار یه دفعه الان سرش میکشه ممکنه بعدا هم پشیمون شه گریه گزاری هم بکنه که من نفهمیدم جاخالی دارم اینا آقا نه تنها جاخالی ندادند اگه میدیدن یه تیرم داره رد میشه صورتشونو می آوردن من جایی ندیدم اینا تو مدت نماز اجازه داده باشن به امام حسین تیری خورده باشند میخوام وفا بگم آقا وفا اما وقتی که امام سلام داد اینا بدنشون مثل جتیقی شده بود دیگه یه دفعه بی اختیار خوردن زنین جب اونا اینا شنیدنی ها شما هم نسبت به امام زمان اینجوری باشید انشالله بتونیم بتونیم دفاع کنیم این کار انبشمندیه نصرت اهل بیت کار بزرگیه آقایی این توجه ببهمید حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق بدرقه رحت شود همت شهنه نجف علی دعات میکنه زهراد دعات میکنه این کار بزرگیه اینا خوردن زمین امام اومد سر اینا رو به دامن گرفت اینا چشمشون رو بیرمقشون رو وا کردن دیدم پسر فاطمه از. گفتن وفایی تا یبن رسول الله وفا گفتن ما سربازای با وفایی بودیم یا کم گذاشتیم امام فرمودن انطب چه کرد انطب اما میفل گفت تو تو بهشتم جلوی من میری من گای معنی میکنم میگم تو زودتر از من وارد بهشت میشین نمیدونم چه گفتا. گفت گفت انطب اما تو بهشتم تو زودتر از منی خب این وقت وفا, وفا. هر کسی باعث نره پنج تا خصلت نداشت چیزی نداره روش حساب نکنی اگه کسی وفا نداشت روش حساب نکنی ول حیا اگه کسی حیا نداشت دیگه روش حساب نکنی ول حسن الخلق دیگه وقت نیا. اگه وقت حیا رو معنی میکردم میرم وقت گذشته میخوام روزه بخونم اینا دیگه اگه کسی اخلاق خوش نداشت روش حساب نکنی و تدبیر هر کسی قدرت مدیریت نداشت تدبیر و امور نداشت این چهارتا تا همه رو نوشتن برای این پنجمی ول <تصفح> خامسه وحیت تجمع و حاز الخصال میگه پنجمی جامعه این چهارتا تا خسلت. هر چهارتا تا تو اونه الحريه آزادگی الحريه آزادگی یعنی آدمی که ذلیل می شود در مقابل دیگران من بارها دوستوخرم این جنگ سفین هم کنار فرات بود چی جنگ سفین اونور فرات بود مثلا تو شرق نمیدونم فرات بود اگه من اشتباه نکنم کربلا مثلا تو غرب فرات بود یا برعکس آ برعکس ظاهرا ماله تو شرق فرات بود کربلا تو قرب فرات بود ولی اطراف فرات بود ماویم هم همین کار کرد همین تا رسید آب و بست رو روی لشکریان همین همین کار که خسرش کرد از تعمیر رو آب و بستند یه سخنرانی که نحچه بلاغه هست به قدری این سخنرانی هماسیه هم. که من تو عمرم تا حالا سخنرانی هماسیتر از این نخوندم نشنیدم که چنان تو رگها این مردم کوفه خون به جوش آمد یه حمله کردن تو همون ساعتای اول اینا رو تارمار و کردن آبو پس گرفتن کل آبو بعد گفتن ما مقابله به مثل می‌کنیم حضرت فهمودن نه نه جوان مردانه به جنگید حریت بده آب آبو باز بذاریم آب اینجوری نجنگید گفت آبو بیان بخورند مقابله به مثل اما یه جمله می‌خوام از این سخنرانی امیرالمؤمنین رو بگم خیلی علی اون فوق العاده است میفرماید الموت الموت فی حیاتکو مقهورین خیلی آقایون اینو باید با تلابه تا تبوندم مرگینه که زندگی بکنین و تو سرتون بزنن مرگینه که زندگی بکنین و زیر سلطه باشین الان این مردم فلسطین این مرگ آقایون زندگی میکنن اما زیر سلطه اسرائیل هم. این مرگه دیگران بیان اجانب بیان بر شما مسلط بشن و تو سر شما بزنن اما برمودن شنیدنی و الحیات فی موت کم قاهرین و زندگین که بمیرین و ذلت نپذیرین این راه امام و این راه امام و کل کلو حیین سال هر آدم زندهی میگد راه منو بد دارد. من می میرم اما سلطه نمی پذیرم زلط نمی پذیرم دیگه... حالا بحثمون تا همینجا ایک از جملات فوقلاده امیر المومنینه حالا اینم گفتم برای جوانه بگم خدا همش میگه عزت همش میگه عزت همش میگه در مقابل غیر خودت خار نشد اما وقتی به پدر مادر میرسد میگه اینجا اگه زلیلشی من دوست دارم حالا <تصفيق> میخوایم یه استثناء برش بگم دیگه آقا نفهم ما میخوایم موعظه کنیم جبونا رو وخفز در مورد پدر مادر وخفز لهما جناو هز ظلم من الرحمه میگه جلو پدر مادرت بالهاتو به علامت زلت از رو مهربانی جلو اینا پنگ ولی خدا دوست نداره شما در مقابل هیچ که خارجی. اما دوست داره رو پای بابات بی افتی پای باباتو ببوزی. اون مورد رحمت خداست. هست. خدا دوست داره آقا شما خودتو بندازی دست و پای مادرتو ببوسید. شما این امام حسین که رهبر و فلک فلک نمیتونست امام حسین آقا در مقابل خودش به کرنش بادار برد. اما همین امام حسین میاد سورتشو میذاره کف پای مادر <تصفيق> اونو خدا دوست داره یه وقت بیبی بی پاش خیس شد یه نگاه کردید خسینش اومده عشق دارد و می چی میگه میگه مادر یه کلمه با من صحبت کن <تصفيق> من دیگه دارم قلبم وای میست من جملات این اونتون یادم نمیاد. مزنوی یعنی ندارم جون میدم یه کلمه با من من یه صدا بزن اما کجا او صورتشو میذاره کف پای مادرش اون آدمی که میگه این ندعی یب ندعی قدرک از بین اصنتاین بین سلط و زله حیات من نزل این در مقابل مادر میاد ولی اینو خدا دوست دارد پاده دا اگه میخواین شبا میاین اینجا صفا کنیم. دست مادرتو ببوز پاش بگو من رو دعا کن میخوای شب قدر آقا دعات مستجاب بشه برو دست بابا تو بگو منو دعا کن چند تا دعا مستجابه یکی پدر مادر دعات کنند یکی امام زمان دیشالله دعات کنند که ما رو میکنه امام زمان فرمودن هر کی برا جد قریب من حسین گریه کنه. خیلی مجلس خوبیه نه مجلس ما هر جا که مجلس امام حسینه ما چه فرق نکنه هم اشمال امام دیگه ما اگه میگیم مجلس خوبه نه اینجا خوبه همه جا خوبه, همه جا خوبه. هر جا زیر سایه امام حسین باشی خوبه الان <تصفيق> امام حسین داره نگاهت میکنه دعات میکنه هر چی برا جد قریب من حسین گریه کند بعد برا فرج من دعا کنه امام زمان گفته بعدش برا فرج... من هر جا باشم دعاش میکنم این دعا مستجابه پدر دعا کنه مستجابه مادر دعا کنه مستجابه امام زمان دعات کنه اما من شب هشتم میخوام ببرمتون مشهد ها <تصفيق> میخوام بگم امام رضا یا ابن ما امام حسینی هستیم دیگه امام رزا ما رو امام حسینی کن یبنه شبیل ام کنت با کیم لشیئن هر جا دلت گرفت آقا چی جور صحبت میکنه میگه پسر شبیل هر جا دلت گرفت خواستی گریه کنی برا جد قریب من حسین گریه کرد. خب که لیل حسین ابن علی ابن عبی طالب بگم جوان ها خیلی شبای خوبیه حیف حیف که تره تموم میشه چشم هم بزنی تموم از شبش گذشت اوقات خوشان بود که با دوست بزنی ماه دیگه نیست بری شبا میگه کجا بریم <تصفيق> قدر این شبا رو بدون یبنه شبی این بچه ای تعلال حسین امام رضا میگه پسر شوید اگه بتونی برا حسین گریه کنی حتی جرت دموع که علا تا این این عشقات بریزه رو گناهات قفر الله کل زنبن از مفتر. خدا همه گناهاتو میامرده دیگه روزه بخونم گفت عواصد کربلا می میبرم تو که خودش گفته گفت عبا سرد اگه دیدی من عبا رو سر کشیدم بدون منو سم دادم خب از مجلس معمون میام بیرون نگاه کن اگه دیدی عبا رو سرمه بدون بعض خرابه من سم خیلی قویی به امام رضا دادم. من دیدم پیش از ظهر سم داد هنوز شب نشده بود امام رو دفن کرده بود ازا میگنم چی بود هنوز شب نه تاریک نشده بود امام به خاک سپرده شده بود به طوری که پسر همین عباسلت میگه، وقتی دیدم از مجلس معمون اومد بیرون بعد من دیدم تو مقتلا دیدم پنجاه بار امام نشست و بلند شد ببین چجون کلافه بود رایم نبود ولیعت با دارال ماره خونش انقدری را نبود چند قدم را بود پنجاه بار گفت نشست بلند شد گفت چگرم <تصفيق> دلها بسوزه برا بچه فاطمه بعدم گفت حواصل درها رو ببند هیچکی رو راه نده اینم ولیت بود نه اینکه بعضی مدده میگن که قریب کسی دیدنش نمیاد نه نه ولیت بود میریختم تو خونش. او میخواست شلوغ نشه جوادش بیاد فاطمان <تصفيق> میخواست خالی باشه چون سه ساله یه پسرشونه نزدیک سه سال بود جواد رو ندید دلش لک میزد برای جواد گفت درها رو محکم ببند کسی رو رانده من ملاقاتی دارم پسرم از مدینه میاد اما حسینی ها کربلایی ها همین عباسل میگه دیدم رفت تو حجره فرش و حجره رو زد کنار امام رضای امام حسینی رو ببین این شکم برهنه رو گذاشت رو زمین ب گفت عباس سرف میخوام مثل جد قریبم حسین جون یه ملو که ملت سلیم مثل کسی که مار گزیده باشه دیدم به خودش میخیچه اما گفت یه جا دلم به حالش سوخت دیدم هی تو حجره صدا میزنه میوه دلم جواد حسین یاد جواد اومد مدینه کجا مرب کجا میگن هزار فرسخراز هزار فرسخراز جواد از مدینه اومد مرب من تو مختر دیدم این وارد هجره شد امام رضا از جا پرید با اون حالی که داشت این بچه رو بغل کرد به سینه فشار جواد آروم آروم بابا رو تو دامن خودش ها بود. منتهای آرزوی یه پدر اینه لحظه آخر سرش تو دامن پسرش بود امام کم کم تو دامن جواد جون داد اما لا یوم کیا و کیا ابا عبد حسین نگاه کرد یکی بیاد دوزان سرش به دامن بکیره با اونم پسر داشت خیمه کجا گودار کجا پنجا قدم راهه هر چی نگاه باشه زین و بیاد حیدی من از همه تو امام زمانم مذارت میخوام از شما اما یه وقت چشما رو باز کرد هیچ شم رو سینهش آه. و شم رو جالسه علا و صدره پا